اونها سالهای سال آرزوی داشتن فرزندی رو تو دل داشتند و چون به این آرزو نمی رسیدن روز زن به شوهرش گفت عزیزم میدونی که سالهاست من و تو تو آرزوی فرزندی می و میسازیم خواهشی از تو دارم و اون اینی که به جنگل بری کمی چوب بیاری و با اون یک گهواره زیبا بسازی من تو گهواره تک چوبی می و براش لالایی میخونم و با این حصه ها دل خودم رو خوش میکنن. مرد دوست نداشت این کار رو بکنه اما برای دلخوشی همسرش به جنگر رفت و مقداری چوب جمع کرد و گهواری زیبا و برای همسرش درست کرد. زن اون شب تکه چوبی تو گهواره گذاشته اونقدر لالایی خوند و عشقریخ تا خودشو همسرش کنار گهواره به خواب رفتن. روز بعد وقتی خوشی طولو کرد و زن مرد بیدار شدند تا مثل هر روز به کارهای روزمرهشون برسند نگاهشون به گهوه افتاد و اون چیزی رو که می دیدن نمی تونستن باور کنن. چوب به بچه بسیار زیبا و نازنین تبدیل شده بود که به پدر و مادرش لبخند می و نوید زندگی شیرینی رو به اونها میداد. زن و مرد فریادی از شادی زدند و نوزاد و زیبا و شیرین خورشون رو تو آغوش گرفتند و بوسیدند و نام اون رو تلسیک گذاشتند. تلسیک کم کم بزرگ و بزرگتر شد تا اینکه جوونی به و بلند و شجاع شد. روزی از پدرش خواست که براش قایق رو بخره تا به اون به ماهی گیری بره و تو خرج و مخارج خونه به پدر و مادرش کمک کنه. پدرش قبول کرد و قایقی کوچیک برای اون خرید. از اون روز به بعد تلسیک برای سید ماهی به رودخونه می و تا غروب تلاش میکرد و شب که برمیگشت سبدی پر از ماهی با خودش میآورد پدرش ماهیها رو به بازار میبرد و میفروخت و اینجوری زندگی اونها بهتر و گرمتر شده بود هر روز مادر تلسیک براش غذا میبرد و کنار رودخونه میاستاد و پسرش رو صدا میزد تلسیک تلسیک پسر نازنینهبیو مادر برات ناهار آورده ستیک با شنیدن صدای زیبا و مهربون مادرش به ساحل رودخونه میومد و ناهار میخورد و دوباره به سمت رودخونه میرفت مادرش همیشه اونو نصیحت میکرد که خوب دقت کن و وقتی فقط صدای مادرش رو میشنوه کنار ساحل بیاد و ای کسی دیگه اونو صدا زد نباید گول بخوره تو نزدیکی اون رودخونه مار بزرگ آدم خاری زندگی میکرد که تلسیک رو دیده بود و تو اشتیاق خوردن اون روز رو به شب و شب رو به روز میرسون. یک روز تو بین بوتاها و علفزارها پنهان شد و دقت کرد تا به مادر تلسیک اون چجوری صدا میزنه. روز بعد با صدای خشنازشت خودش گفت تلسیک، تلسیک، پسر نازنینم نه؟ بیا مادر برات ناهار آورده. تلسیک گفت نه این صدای خشنازش صدای مادر من نیست. من گول اون رو نمیخورم. مار ناراحت شد و پیش آهنگر رفت و گفت تو باید کاری کنی که از هنجره من صدای شبیه صدای مادر تلسیک بیرون بیاد وگرنه تو رو میخورم. آهنگر بیچار ترسید و کاری کرد که صدای اون مثل صدای مادر تلسیک لطیف و زیبا شد. روز بعد مار کنار ساحل رودخونه رفت و تلسیک رو صدا زد و چون صداش کاملا شبیه صدای مادرش بود تلسیک گول خورد و به سمت اون رفت و مار که لابلای علف کنار رودخونه قایم شده بود حمله کرد و اون رو گرفت و با خودش به خونه برد. دم در وایستاد و رو صدا زد. مار اولنکا، مار اولنکا در رو باز کن. مار اولنکا در رو باز کرد. مار با اسیر خودش تلسیک وارد خونه شد. اون وقت به دخترش گفت: مار اولنکا، اجاق رو روشن کن و وقتی آتیش خوب گرم شد، تلسیک رو خوب بپاز. امروز ظهر مهمون داریم و میخواییم غذای لذیذ و خوشمزه به اونها بدیم. این رو گفت و از خونه بیرون رفت. مار اورنکا اجاق رو روشن کرد و آتیش اون رو فروزان و سوزان شد. بعد بیل بزرگی آورد تا تلسیک رو روی اون بینشون و با اون بیل اون رو, رو روی اجاق بندازه و بپزه. بعد به تلسیک گفت بیا بشین روی بیل. تلسیک گفت من نمیدونم چطور باید روی بیل بشینم. گفتم بیا بشین روی بیل. تلسیک دستش رو روی بیل گذاشته و گفت اینطوری باید بشینم. دختر ما گفت نه اینطور درست نیست. تلسیک سرش رو روی بیل گذاشته و گفت درسته. گفت. نه اصلا خوب نیست و باید کاملا روی بیل بشینی تلسیک گفت میبینی که من نمیدونم جوری باید روی بیل بشینم میشه از تو خواهش کنم یه بار روی بیل بشینی تا من یاد بگیرم مار اولنکا گول خورد و روی بیل نشست تلسیک به سرعت اون رو داخل اجاق انداخت و در اجاق رو محکم قفل کرد و از خونه فرار کرد و چون صدای مارو دوستاشو شنید بالای درختی رفت و قایم شد. مار و مهموناش وارد خونه شدند و اجاق رو باز کردند و گوشت پخته ی مار اولنگا رو با لذت تمام خوردند. بعد از نهار با مارهای دیگه که سیر و خوشنود شده بودن از خونه بیرون اومدند و رو روی الفزارها دراز کشیدند. و خندان و شوخیکنان با هم میگفتند گوشت لذیذ تلسیک رو خوردیم و حالا کمی استراحت میکنیم. تلسیک که تو دل نادونی مارها میخندید و اونها رو مسخر میکرد از بالای درخت بهشون گفت گوشت لذیذ مار اولنکا رو خوردین استراحت کنید. مارو مهاناش تعجب کردن و تکرار کردند. گوشت لذیذ تلسیک رو خوردیم و اکنان استراحت میکنید. تلسیک تکرار کرد گوشت لذیذ مار رو و استراحت میکنید. مار بزرگ تلسیک رو بالای درخت دید و فهمید که چه برای بر سرش اومده. خشمین شده به سوی درخت حمله کرد و با دندون های تیزش شروع به جویدن درخت کرد تا اون رو قطع کن و تلسیک رو بخوره. اما وقتی به نیمه ی تنه درخت رسیده بود دندونش شکست. با عجله پیش آهنگر رفت تا دندون تیز و ای برای اون بسازه. آهنگر ترسید و دستور اون رو اطاعت کرد. مار با دندونی آهنین و تیز برگشت و به جویدن تنه درخ ادامه داد. کمی مونده بود تا درخ روی زمین بیفته. تلسیک مرگ رو توی یک قدمی خودش میدید. از خداوند کمک خواست. ناگهان نگاهش تو آسمان به یه دست مرغا افتاد اونها رو صدا زاد و خواهش کرد که اون رو با خودشون از اونجا ببرن و از دست مارهای بیرم اون رو نجات بدن. اما مرغابی ها گفتن ما عجله داریم و نمیتونیم تو رو با خودمون ببریم. از گروه بعدی که بعد از ما میام به خاطا تو رو ببرم. مارها درخت رو می و می جویدند. چند لحظه دیگه درخت می و تلسیک تو کام مارها گرفتار می‌شد. گروه بعدی مرغابی ها گذشتند و اونها هم به فریادهای التماس تلسیک توجه نکردند و رفتند. او نامید و خسته بود و خودش رو آماده مرگ میکرد که یک دفعه تو آسمون مرغابی کوچیک و ضعیف و تنهای دید که خسته و آرام پرواز میکرد و میرفت تلسیک به عنوان آخرین تلاش برای زنده موندن به مرغابی کوچیک و ضعیف گفت مرغابی کوچیک و تنها از تو خواهش میکنم که منو روی بالهات بذاری و با خودت به خونهم ببری من یک ام از تو پذیرایی می کنم. من هم زنده می مانم و از دست های آدم خواهر نجات پیدا میکنم. دل مرغابی به حال اون سوخت و روی درخت فرود اومد. تلسیک روی کمر اون نشست و مرغابی به پرواز در اومد و رفت و رفت تا اینکه تلسیک رو تو حید خونشون روی زمین گذاشت. تلسیک کنار پنجره رفت و بشنوه پدر و مادرش در قیابه اون چه میکنند و چی میگن از پنجره نگاه کرد و دید مادرش دو تا کیک لذیذ و داغ آماده کرده و به شوهرش میگه شوهر عزیزم دو کیک خوشمزه پختم یکی برای تو یکی برای خودم بیا با هم بخوریم تلیسی گفت برای من چی مادر تکرار کرد شوهر جان گفتم که یکی برای تو یکی برای من تلسیک تکرار کرد برای من چی؟ زن و شوهر ناباورانه صدای ترسیک رو شناختن از خونه بیرون دویدن و پسر عزیز خودشون رو سالم و خندان و پیروزمند دیدن. شادیها کردند و اون رو تو آغوش گرفتن و بوسیدند و اشک شوق ریختن. اونها نمیتونستن باور کنن که پسرشون زنده به خونه برگشته. یک دفعه چشم مادر به مرغابی افتاد و به سرعت به سمت اون رفت و اون رو بگیر و برای نهار بکشه و از اون غذای خوشمزه درست کنه اما تلپسیق به مادر و پدرش گفت نه مادر جان این مرغابی مهربان و ضعیف بود که جون منو نجات داد و منو به اینجا آورد اون رو باید پیش خودمون نگه داریم تا باعث برکت و خوشبختی زندگی ما باشه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 ادساین مهران دوستی